والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله و على الطيبين الطاهرين المعصومين و نعص دائمه الصلاه دائمه اجمعين اللهم وفقنا جميع المشاغل وارحمنا يا ارحم الراحمين که رواياتي رو در باب نجوم ذکر شده در باب تنجم و کلمات اصحاب هم از شیخ مفید نسبت دادش لیکن دا چون الان در نوشتای شیخ مفید ما نداریم فیلن سید مرتضا رو اول میگیم مرحوم سید مرتضا متعرض مسئله شده که ما بعد و این شده این مسئله بین علمه های ما لذا خیلی احتمامی بین روایاتش مهمه حدیث شماره سر از باب چهارده از عباب آدام سفره به این چاپی بید من هست کتاب الهج جلد 8 صفحه 269 و و, و به اسنادی هی انشو ایب ابن واقع انل حسین این حدیث رو شدیم این حدیث توی اون باب اوام مایو کسرم بود همی سند. همین حدیث اونجا بود تعرض شدا کردیم از کردیم یک حدیث ایست که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب فقی هم آورده از مثلا آخر فقی جلد چار فقی آخر فقی با عنوان مناه النبی حدیث طولانی چند صفحه. هست و من یه توضیحاتی رو سابقاً عرض کردم الان مرحوم صدوق یک آثاری رو نهار میکنه کنه که مثلا نقادان ما فی ما برد اشاره حتی این اثر ندارن. حالا یا به احترام صدوق ساکت شدن مثلا پس کتاب الال رو نسبت داده که فضل نشازان از عزبزا شنیده نه نجاشی متعرضی این شده، نه شیخ این شده، اصلا نجاشی و شیخ متعرضه این فضل نشازان و حساب رضا و این هم واقعا چرا؟ احتمالا احترام صدوق انجام دادن به الله این صافت خب کتاب صدوق که فقیهه، این که قطعا دستشون بوده، این که نمیشه که انکار کردیه کتاب فقیه دیدن اینا رو اصلا استخراج نکردن، نه به عنوان کتاب استخراج کردن، به عنوان راوی می‌فهمید که آقا یوز، جالنمون هم من نفهمیده. مثلا شعیب بن از قطعاً زید مرحوم شیخ کتاب تاریخ مقابلش رو زید شعیب بن از حسین زید نام می‌بره. اسمش بوده؟ در کتب اهل سنت شعیب بن رواقه آمده اومده که حسین مجهوله. تازه اینم معنیش اون باشه. به هر حال این سند رو کلاً نمی‌شناسیم یعنی نه کلاً، معظمش نمی‌شناسیم. اساتید هم که ازش نه هرگز نمی‌شناسیم. طریقش اول در آخر مشیخه. حدیث ضعیفه. البته اینم هست که ایشون طریقش به شعیبه بن واقد و در خود فقه هم نوشته روی عن شعیبه بن و طریقش هم فقط همین روایته یه روزی از کدمتی از علما معتقدن که فرقی بین روا و روی نمی کنه دلیلشون همینه از ادلهشون نمیخواستم بگم همینه میگن گاهی صدوق در آخر در مشیخه طریق آورده به یک شخص که از اون یک یک روایت هم داره اون روایت هم با رویات اگه بنا به چشم عاشق بر نگردیم وقتی که به درد عاشق نمیخوره چیکار بکنیم اون یک مورد هم تنها با روبیه است پس باید بگیم روبیه با روا فرق نمی کنه این یکی از استدلالات این افرازی که قائم هستن البته اون چهار تا وسیله بچ دیگه بهش اضافه کردین جاشه جاشه ان شاءالله در محل خودش با یه روز دیگه مستقلاً بحث بکنید این بحث جواب داره فعلا محمد ترزی بحث بشه به هر حال اونجا عذر کردم رواس سند ضعیفه قال و نها عن اتيان و قال من اعتاه و صدقهو قد بر ام ما انزل الله على محمد صلى الله عليه واله اینم جزء روایت مطلقه ماست از هم درس بندی شاورانم عرض کردم روایت سنن ضعیفه و این تعبیر من اعتاه و صدقهو قد بر ام ما انزل الله هر سه یواشماش تو کتب فقهی ما هم آمد لکن به مزامینی مختلف من صدقم من صدق, من صدق منجمان فقط تره به فقط کفره به ما اون در الله رسول الله تعاویر مختلفی آمد از کتاب معتبر محقق قدس الله نفسی شروع شد یواشواش تو کتاب ما آمد چون مثلا شما دیگه غالبا مثلا در سطوع هم فکروندی دیگه در کتاب فرهی یواشواشی جزوه علیسه نشد و اما الان ملاحظه بفرانه سندش حدیث شعیب ابن واقع که از انفرادات شیخ صدوق سند و این هیئت مجموعی که به نظر ما قطعاً جعلیه یعنی حیعت مجموعی که ثابت نیستن رسول الله و قابل اعتماد نیسته باید سابقاً گذشت حدیث شماره چهار وسیل عمالی یعنی مرموم شیخ صدوق در کتاب عمالی خودش هن محمد نه علی ماجیلوی یا ماجیلوی احتمال دادن علی ماجیلوی بخونین احتمال دادن به نهوه اضافه نه محمد نه علی ماجیلوی محمد علی ماجلیوی چون جدشه توی اونم اسمش محمده بخی در زبان فارسی قدیم میگفتن علی ماجلیوی یعنی علی بن ماجلیوی انا نهی محمد بن ابوالقاسم این جدشه حالا گفتم چند بارم بحث کردیم ما مرد بزرگواری است ان محمد بن علی بن قریشی این محمد بن علی قریشی این همونی است که معروف از محمد بن علی سیرفی ابوسومینه اهل کوفه از کردیم در اون مجموعی که ما داریم انسان هسته واقعا حتی کذاب های ما بیاس با اهل سنت نیسته اینقدر ما حمله بتونن در مجموعی که ما داریم در کسانی که متهمه به کذب نسته جیب و به الله در اهل کوفه اشهرشون همینه ما دیگه از این اشهر نداریم اشهرال کذابین حلل اطلاق همین محمد نعلی قرشی ابو سمینه سیرفی و خب هم از شکلاتم است بعدون که اینقدر کذابش شده بهش خورده من توضیحات کافی ارق کردم اینا ناشی از عدم تعامل در فقه ما و حدیث ماست اینا به بحث رجالی مفرح کردن این سر خرابی شمی از کلی میراث های کوفه از زمان تقریبا حضرت رضا یا کمی بعد یا قبل از وفات ایشان به قوم آمد توسط ابراهیم بن هاشم لذا این بحث شروع شد به انجام دادن میراث های عراق کوفه برداد انبار واسط بسره به قوم آمد که در قوم هم یک تنقیه و تعدیل و تصیحی و پالایش به اصطلاف فارسی ما به اونها انجام شد یکی از افرادی که از کوفه میراست و عبرده همینه من از کردم شعن محمد بن علی خورشی اصلا روایل از امام نیست چون شبه شده خبیشون یه اکز اک... اشترال کذابین هم اشترال کذابین هم حدیثش موجود تو کافی هم هست همین چخص تو کافی هم هست اخطوط به این کتاب خصال نداره تو کافی هم هست و قالبان هم راوی از رو احمد برقیه هم ایشون وقتی که از کوف آمد برانون که یک رجول علمید خیلی هم احترامش هم مندل احمد عشری هم نازر شد کرعیز خون بود خیلی بعد این. ما بان کذب اخرجه این مراد از کز یعنی چی یعنی فرض از کتاب نصر بن مظاهر که نقل کرده بعد نسخه دیگر رو نصر بن مظاهر دین داره اینطور نیست این مراد اینه نه کلمه علی امام اشتباه نشیه در ما ایده زیاد شعرشون فقط راوی کتبند مثل که الان شما میگید وسائل چاپ اینو دوله وسایل چاپ مايرغباني وسایل چاپ فلان چاپ بیروت چاپ نمیگه چاپهای مختلف خب یک چاپی اجش خراب داره این میگه این تمام کتاب باطله اشتباه باطلش... به شما بگه میگه مثلا چاپ های فلان خطا داره اشتباه داره غلط داره این نه این که کل کتاب از اول تا آخر باطله این تصور بفرمایید جناب محمد بن علی قراشی ابو شمه هیچ روایتی از امام نداره شهن تاریخی ایشان نقل میراث های علمی ما از کوفه به قومه حتی لا، هو حالا این کتاب نسب نمازیم باز کتاب مثلا حضرت در کوفه محروف بود. کجا هم بعد از چرا عمل احترامش پر از کوفه آمده کتاب بل فعل هم همینطوره کتاب با خودش بعد اومدن کرال نسخاشو مقایسه کردم دیدن با نسخهای دیگه نمیخوره خب بیرونش کردن گفتم تو دروغ گفتی این نسخات خلاص. این اصلا دروغ نرفته اصلا من کرال اینو دروغ نیست مثلا ایشون شاید مبناش این میده که نسخهای بازاری هم اعتماد کرده میتونه در واقع در معلگه تو بازار کو چند تا کتاب بوده بهش نشون مظاهر خرید کرده گفت چه حدس اینا نمونه یا انسه نمونه سازه نگا کردن چی شد بعد مقایسه کردن دیدن در اون نسخهای دیگه نیست و تم نسخه خلاصه قرار از قم جور این سر بی اگر تصور این باشه خب اون جایی که ثبت کرده کلی است که نسخه بوده یعنی میگه معناش اینه که تماش باصله وقتی طرف شعبش ناقل نسخه باشه چاپخونه باشه خیلی با مقارنه راحت میشه فهمید خب این چاپ رو شما با اون چاپ باقاره نمی‌کنید مواد خطاش جاییه این که مشکل نداره که در چیه مثلا پس براور تصور نشه که وقتی نگی محمد نعلی اشتر و کذابی، یعنی کسی بود که آمد در قوم در این نسخی که نعلقه قلق کرد داره از قوم بیدونه چه کردن؟ پس بنابراین میتونیم بگیم اگر جایی رو مثل کلی قبول کردن با نسخه عطمی مقارنه کردن نسخه همونه خب قد از این نسخه نعلقه کردن؟ گاهی پیش همونه مثلا شما الان اینجا اگر بخوایی نهاره هم کتابی که انه هم بری بیسیم در نجوم ممکنه از وسائل نهاره هم خب از ست سال نهاره هم بخوایی بشیم از ست از امانی نهاره کرده گاهی میشه چون فصلیم به نهر سما از این شنیده بوده این هم نه کذاب معنای از خدم این مبناست نه اینکه که کزدرس این مبنای ازدهی بوده که اگر ما در بازار هم بخریم میتونیم بگیم انفلان. انفلان. انفلان اشغال این دقیقی ضعیف هم می گفتن نه انه حتی حد درسن اشکال نداره بینید اینجا ان نصر نموظاه تصالفاً نصر نموظاه از پر متوفای دیویست در کوفه هم بوده پوغل آدم مشهور میگن عطار هم بوده عط رو میفروخته عطار معنی عط نه عطار معنی مثل شهر تربیل نسخه داروخان دارو های ما و خیلی با قوله یکی از این مهمیشتان خیلی ذوق اعصفوچیش خلاصه کرده. قرارم ایشون آمده کتاب نصر به رو قم آورده خوب روشن تاریخ کتاب. این روایت در کتاب نصر به به نسخه قری علی موجود بوده. ایشون در کوبه عشار کذابین. adam ایشون کذابین رو نقد از فضلن شازان مشون گل کلاگون المشهورون خمسه محمد بن سنان و محمد ابو جنبه ابو سمینه و, زبیان و اینا بعد و اشهرهم ابو سمنه عبارت ماله تذکر نشازن خب ان به مذاهب این خیلی اونقدر مشکل نبود حالا کس چون اهل سنت بحثشون رجالی بوده برای اونا مشکل باشه روشنشروز بحث ما چون فهرستی بوده مشکل نداشته چون کتابه... کتاب کتاب نشر الان چاپ شده نه دیگه بله این در متن نموزاید از سفینی که الان چاپ شده نیست این روایت در سفینی که الان از متن نموزاید چاپ شده نیست اما احتمال داره این چون قطعاً این روایت مال جنگ نهروانه شاید در کتاب نهروان آوردیم واقعاً مال نهروانه اون الان من نمیدونم که این کتاب سفین داره خلاصش نگاه بکنم که بخش نهروانه دارم ببینم جمل رو داشت نهروان نمیدونم نه. به هر حال این در کتاب الانی که ما از نص ابن به نام سفین ورقه سفین چاپ شده. ورقه سفین که از نص چاپ شده الان این عنوان در این کتاب نیست. و کتاب نصر ابن مظاهر در اختیار مجلسی هم بوده ظاهرا در اون نبود. الهی میگفت رواه نص ابن مظاهر کتابی چون مجلسی هم از نص نقد نکرده. اینا چی میگفتن؟ میگفتن پس ما در یک نسخه از کتاب ابو سحینه بوده در بقیه نسخ نبوده. این نمیشه خب؟ خود کتاب دیگه نمیشه. من عمره نصر از این عمره سر از ما نمیشناسیم این همون بود که گفتیم مرحوم سیلیمتاوس ها این عمره نصر باطل رو حسینه بعد و بعدشم حالا, حالا یک مشکل که حرف سیلیمتاوس که خیلی عجیبه که واقعا تصدیقش خیلی که تصدیقه نه که باطل سر بود. ارز کردیم که مرحوم جب از اون مرحوم خود آقای به اصطلاح نه مرحوم آقای به هات به هات رضوان الله تعالی تزور مسجدی بله ایشون بعد از اینکه اشکال میکنه به مرحوم سنتابوس که این این اون عمر صادق الحسینی نیست بله مصطفی چند بعد میگه که چون طبقه هم به اون نمیخوره به استداره ایشون اشکال ایشون اینه میگه اون صادق الحسین نمیخوره ارز خودم که این عبارت مرحومه چندها نوشتم؟ 233؟ نه اگه 3003؟ نه نه هم نوشتم چون مشخص سرفشت من آشیه زدم و مشخص حالا بعد درگیرین یعنی به خودشان رو برمگیرین به بحار بخونین درد بله. اینشالله اونجا متعرضش میشن ایشون نوشته به خاطر این که نصر ابن مزاهم رواهن ابی جعفت هست و یعنی از زمان باغه ایشون اینجور نوشته مروم صفحه دی بیست و شست و هست بعد ایشون مجلسی ملعون من جملت رواهات الحدیث و حملات الاخبار حتی یعنی آنها در اخبار کسی و این من رواهاتو نصر و انه هم بعیدون جدن فیلن نصرن کان از اصحاب الباغر علیه السلام و ملعون لم یبقه به استداه بعد شهادت الحسین اینه که ملعون نهست کان من اصحاب الباقر این مستردش رجال شیخه در اصحاب علی جعفر الباقر اسم نصر ابن مزاهم برده که این هم قطعا شیخه اشتباه کرده این جای شبهش نیست که شیخ در اینجا بید هم به طور شیخه اشتباه کرده هر دو مزرگ بار تو اشتباه نصر ابن مزاهم متوفای دیویستو دواز ولادتش رو از حدود سلو به بعد میزونن اصلا بعد از وفا امام باغل ولادتشه اصلا از امام باغل قطعا نهرون میکنه احتمال داره در یه گروهاتی در عبی که امام با امام جواب باشه تازه اون هم معلوم نیست که از اونجا جواب کنه پس این که مثلا اینکه نسل شون نصران مزاهم بینه اصحاب الباغل اصحاب الباغل جزمن نیست نه که احت من عمر ابن سعد ارز کردیم عمر ابن سعد ابن عب سیدل اسدی الکوفی از مشایخه. مشایخ مشایخ به این معنی لست ابن مزاهمه احتمال زیر قصد تردازی بوده قصده های رو نقل میکرده حالا پیر بوده قصده میخفته لست ابن مزاهم ازشون خود لست ابن به احتمال قوی زیدی باشه به قصد و احتمالاً از زیدی های کوفه چون اونا رو ما البته این در میزان احسانشه شیعی یا بقی راضی به همین های عمر سعد نمی شده سیم یوسف ابن یزی فعلا مراجعه خاصی نکم به ذهن هم مجبول میدن نمی توانی چیزی بگیم ابن ابن این هم همینطور دقیقا نمی شده سیم قال لما اراد امیر المومنین سلام الله علیه المسیر الى اهل نحروان اخاه منجم و منجمون اینجا تعبیر اطاها منجم و, و معرفی نکرده فقال له یا امیر المومنی لا تصرفی هاده هستا و سرفی ثلاث ساعت نیمزین من النهار سه ساعت بعد فقال له امیر المومنی سلام علیه ولی مه قال لعنه که این صرفی هاده هستا اصحابه که و اصحابه اصحابه که اصحابه که و غرون شدید و این صرفی هستاعت الگتی امرتو که غفرته و غهرته و كل ما خلفت الو تینجا کل ما طلاب و رو مون تسلی نوشیده بقایلی املا مون تسل باشه شد کل ما طلاب فقاهه امیر المؤمنین سام لعلی تدری ما فی بطن نهاده هد داد بر ذکر ما سوال فرند می دونیم فقاهه این حسب تو علمش اسکابش رو بکن امی خواهم کی امیر من صدقه که الله هادل قول فرق کردی یا کردی این یه مقدار زمینه منحت و وصدره او فقط بر ام ما انزل الله علی محمد این آیه سلام علی المؤمنین که به اون شخص فرستادن چرا ان الله ینده علم الغیب این آیه مبارکه رو امام خوندن که این است به اصطلاح معروف از در اصلاح اهل معنا به مفاتیح الغیب که پنج امر فقط خدا میدونه در دعای و در در خنوت الغیب میکنیم به منی عسل کم فاتح لای علما الآن. بعد یونزدل غیس و یا الارحام. ما همیشه ولی علماق الارحام. لاما تدی ما در تکسل کرده ما تدی نفسون به اما میفهم تا اگر میدونیم پس این مخالفه. ما کار محمد خللا الله علیه و الله یادعی مدعیت. اما آنکه تهدیل ساعت الکی منساره فيها. اینجا با صد چاپ شده غلط ساره دسیم. صرف عنه سوء و التي من صارفيها خاقب هر من صدقك بهالا به بقوله ان الاستعانه و بود دنبال خدا اي بفرست نگاه بكن بوضع اخلاق چجوریه في ان يغلي كالحمد بود از فهمی حمد برای تو دون رمبیه از درجه فمن آمنه به حالا لکه به حالا فقد اتخذ فقد اتخذ که من دون الله زدن و نده زد و نده ثم قال اللهم لا خیره الا خیرک ولا غیره الا خیرک ولا خیره الا خیرک ولا اله غیرک ثم ملتبه فیلی المنجم و قال بل نکذبو که و نسیر فی ساعت اللتی نهیت مفت است که از کتاب نصرد مزاهم به این ای که کرده، نقل کرده مرحوم شیخ تود رضوان الله تعالی علیه در امانی طبعا این متن در کتابهای مثل پرسون روزه کافی هم نیامده این مفت که از نصرد مزاهم به این ترتیب نرسده اگر مار نصرد مزاهم باشه اصل این کتاب در سالهای دیویس بوده شما وفاد دیویس دازده و در حدود 200 سال قبل تألیف نحجول بلاقه است، چون نحجول بلاقه در سالش 400 نوشته شده که ما دیگه در مصدره اصحاب نداریم، شخص دومی که داریم مرhum شیخ سید مرتضا سید رضی در نحجول بلاقه حدیث شماره 8 محمد ابن حسین رضی الموتی مرhum سید رضی اسمش محمد سید مزام حسین علیه علی ابن حسین فی نهج بلاغه قال اینجا نقل کرده دوتا یکی حالا من عمدن یکی چیه میخونم اونی که هم میخونم وقت نقطه رو عرض میکنم که این خیلی برای شما مفیده. قال امیر علی علیه السلام لبعض اصحابه ببینید هم من رای توضیح از مکنم گاهی میشه این حدیث واحد داره مضمون واحد این در مسادر مختلف ما با شکلهای مختلف میاد. به قول اهل سنت مصطلح میان متورن و مختصرا روا قران متورن روا فلان مختصرا ما داریم نه فقط در شیعه در اسلام نه فقط در اسلام در متون تاریخی یه مطلبی است یه متن تاریخی رو مثلا خبری جو نمیکنه که دیگه جز دیگه نه دیگه جز یکی از این که بسیار بسیار در مسائل مثلا فقهی و که محل معارف دینی در تفسیر این معارف دینی ما در تاریخ دینی ما خیلی معثره که واقعا خیلی میتونه برای شما کار گوش باشه اینه که با حوصله یک کاریز که الان متاسفاده قربی ها رو ما انجام میدن مستشکنی خود ما قفلت داریم با حوصله تمام مسادر رو استیعاب بکنیم بخش شناسی و شناسی هر،, هر،, هر،, هر کدوم توی یه برقه بگذاریم فیش به صدار موزیان ما سندش و مصدرش استخراج بشه متون با هم مقابله بشه حتی اگر انسان وقت داشته باشه متون رو میتونه یک تا به یه متن بیاره در مقابلش متن دوم در مقابلش متن سوم چهارم پنجم وقت مقایسه بکنه مثلا شماره گذاری هم که بکنه مثلا متن مثل به هشت پاراگراف به حساب به نه قسمت ده قسمت پنج شعر بی صدره تقسیم بکنه مثلا این فقره اول تو این متن مستر... توی این سند هست فقره اول توی این سند نیست توی یک دیگه‌ای می... فقط دیگه تو دیگه وقتی با هم دیگه این فقراته مناسب میکنه مثلا یه فقره تو این هست یک فقره کامل تو این نیست اصلا برداشته شده تو این متن دیگه برداشته شده این خیلی میتونه خارگوشا باشه برای اینکه انسان وصول پیدا بکنه وصول جائس مینان یا مثلا ذهنی allele که هست و اون در مثلا حدیثی منم برای شما خوندم الان فقط یک مقارنه اجمالی می کنم بعد دیگه این مقارنه به این دقیق نمی کنم خدا اصلاً در اینجا در کتاب همالی بود قال لما اراد امیر و مومنی عطا و منجمان فقال هیچ نه اسم برده نه خوصیتش گفته. در کتاب محجب قال امیر و مومنی لبعض اصحابی اونجا اتا و منجمان اینجا از اصحابی ای حالا شما شو بگید اینقدر مولا نغتی شد چه پایه‌ای داره حالا مثلا شما تعجب بکنید حالا انسان چرا اینقدر مولا نغتی بشه سرش اینه سیر الفاووش چون در این مقام بود که در مقابل اون آون دیگه که اینقدر شدید بوده در باب نجوم ایشون البته مرحوم مجدسی حالا می‌دونه واسه با ایشون شوخی بکنه جدی بله مرحوم مجدسی رضوان حالا علیه در همین جایی که الان خونده شده، الان در اومدن باز صفحهشو گم کرده. بیلیس هستن. بله، بیلیس هستن. مرحوم مجلسی قدس الله نعشه که متعرض کلام سیدن ابن شده، ایشان مرحوم مجلسی بعد از این کلام که اینجا الان برشون شما نعر کردن، بعد از این یک بحث مفصلی راجع به کلمات اصحاب و اینها داره که اینشالله بعد ارزم میکنیم اینشالله در بیشتر مقداری که مرغوم شیخ امساری اشاره فرموندن خیلی مفصل ایشان متعرض این بحثه شدن من فکر میکنم مخاصرین با قول اموزی یک رسا شوخی هم با سیل تاووس در صفحه دیوی ستو نقضه هشت و سیل و و نبی علی یون تاووس رحمه رحمه الله لون <صوح> سنقلری علم له <لتیفه> به <تصوح> حاضل ام خیلیطی شون خودشنچون بلد نبودن یه مخصر از این مطلب یاد گرفته اون سعی که این به این علم تیب بکنه چونشون دفاع میکنه بشه در سالشون لز چون واقعا خود م سالز نظردم ج انمسافت حالا قرارشون بخاطره که خود س خیلی اطلاع درست نداشتن سر که این دفاع بکن این علم لون سن قلی له به حاضل هاشنا یه کمی داشتن بعد حالا دقت بکنید در اینجا سه امتابوز بله بعد از این که این رواد است رو میاره این نسخه امالی رو که الان خوندم براتون اون اشکال میکنه نسخه عمودی 265 به نسخه بله به میاد به عبارت نحجل براخل چون در اختیارشون بوده ده سمت آن پروازی به آن حالو کانه سهیه لکان علیه السلام اده هکمه فی حاضر علاس صاحبیه امیر مسلمین برای از اصحابشون، اول دیشکتش هده مسن نکنه جریلاگه، اون نهومن اصحابیه، هنی؟ کلمه امید پاله بگذار اصحابیم نه حساب کردیم تا اوض؟ چرا؟ چون در ذیل حدیث در علم کافر. سیل میگه اگر منجم کافر بود چرا سید رزیز از زورت قارب بعض از حابی؟ به برزن حدی کلمه بعض از حابی؟ که به شما عرض میکنم زرافت رو ملتفت بشید اصلا سید رزیز آمده امام فران منجم و کافر سیل میگه اگر این منجم کافره چرا مرحوم رزیزی از سرکه بعض از حابی؟ یعنی بعض کفار از حابی کفر مگه از پس این مراد از بعض اصحابی هیتی بوده میگه کافر یعنی درست نیست که موجب کفر میشه این از کجا بوده سید انتابوس منشه قال امیر المامرین در عبارت مرحوم به اصطلاح سید ردید تو نهجر بلاقه است قال امیر المامرین لبعض اصحابی لما عزم علی مسیر علال خبارش قال له هوا امیر معامین انصررت فیادل و خشیف انددا تفر به مرازک من خیق علم نجوب فقال از ح اندکه تهدی ها اطتی از اینجا با مثل با محن امالی نزدیک میشه این مالی چی شد؟ دق چی شد؟ این مالی این شد که در نسخه امالی اسم عنوان اتاق منجمون در این نسخه اسمش لبعض اصحابی در مقل برمان جموله ایمه مقل برمان سید رزی سید تاوزه ولی اگر شما وقت کردین این کار بشه واقعا کار بسیار لطیفیه تمام این متون رو با اصانی و مسادرش استخراج بکنید و یکی یکی مثلا تا اینجا و تو قبل بخواه ساعت لفی من سارفی من صدقه که حالا فقط کذب القرآن اینم داره تونمت نحره بلاقه هست و سرغم آن استانه بالا فناید المحبوب و ذوق المکرو و یعنی بقیه فی قولک دل آمیل به آبک آنیوالی خیلی شدیه متنه احتمالم داره که مرهمه سیدرالدی و از کتاب نسبا مزاحم گرفته باشه بعد یشون گه اكبر ناز ای ایوهرناس دی ای می‌نیم ایوهرناس ایاکم و تعالما نجوم این تو متن اعمالی نبود مغازه کبی باز یک چیزای تو ممثل عمالی بود، اینجا نبود که اجازه از اومت نیست. این ای آکن و تعلومند جوب رو مثل سال وثال بشتند س کرده بر ترییم تعلوم جوب، ال مایافت ه دابی فی بر او به. فنه ها تقعلکانه این اینم از روات مطلقه هستند. اییکن و تعلمه علم جوب از روات حالابراتون روشن شد. این متن در کلام امیر المؤمنین آمده در یک تشته واحده در مثلی که در محجل ولاغه هست اما در کتاب عمالی هم آمده این متن نیست هستن کلا ایاکم و تعلوم ابنونی یاستن نیست بله فه اناها تد و نیست ولکاهنو و ساهر و ساهر که الکافر ولکافر و, و فدنا این اصلا کلا نبود مثل این متن با این کلام مشهور هم که خیلی سوالسان می کنندون این مرد در کتاب در یک قدسه واحد در کتاب امادی نبود اما در کتاب مرحوم سیل رزی بود خمشن شد؟ این دو تا نقل از این روایت واحده تا اینجا دو تا نقل و خدمتون حرض کردیم ما وقتی به مساد وقتی در این هم یک نکته دیگه هم سیدن تاووس داریم سیدن میگه اگر این کار بدی بود امام دارن کلاقش میزد یا زندانش می کرد اگر این کافر بود همین میگه. امام در سلطور در کلام اینطور میگه حکم علیه به من الكفار اما به کونی مرسدن ان الفطره فیقتل او او بردتن عن غیر الفطره فیوتربو او یمتن انت توب من توب فیقتل یا فیقتل لعن الروائزه قد تزمنت ان المنجمه کل کافر او کان یجی علیه احکام الكهنه او سهره لعن الروائزه تزمنت کل و و ما عرفنا الى وقتنا حاضا انه و حکم علا حاض المنجم حکم, اح... حکم علا حاض المنجم به احکام الكفار ولا السحره ولا الكهنه ولا عباده ولا عذره بلقی قال سیر و عزم الله دقیق توی این مرد توی یه مفن نحجل بلا به و توی مفن عمادی نه اونه که یه کلکی داریش حلاغش بزنی چون یه هر باره گفت خب از اون من راست میتنیم تاوسیم از اون من گفت حل کاهر و ساهر از اون تا سه رزید کن بعد اصحابی به قطعه اشارت این تا حالا من متون دیگر این روایت رو سریعا میخونم چون خیلی به نظر من ثبائد خوب داره یکی از متون متون زیاده خیلی از عجیبه به ها رو هم به طبق قاعده که داره متفرق آورده از متونی که در کتب غیر ما هست اول بخونیم تا برسیم به متون خودمون از متونی که در کتب غیر ما هست در کتابی ایس به نام کتاب سفین به اسطلاح ابراهیم و حسین معروف به ابن دیوی این بعد از بس از حمدان بوده این بعد از نصر ابن مزاهمه ابدا در کتاب سال میزان توصیه کرده شرحالشی گفته من منعیم مثل علب و حفاظ و قضا بعضی هم تذکیف کرده اما ایشون خیلی اصراح داره که جهل و بزرگ بود بله اسم کتاب کتاب سفین ابن دیگیله من الان از نسخه کتاب خبر ندارم نمیدونم نشده مراجعه بکنم که این کتاب نسخه فیلن موجوده اما به هر حال ظاهرا کتاب معتبری باشه و از اجایی میدونه که من به ابن الهدید اگر آنو خواستم مراجعه کنم در این جلد دوی چاپ معروف صفحه 269 تا 227 دیگه از اینجا نقل کرده، از کتاب ابن دیزیل نقل کرده. قبلش هم نگاه کرده، خودش لطایفه کار می‌کنه. چند تا قبلش نرم میکنه خودش داره ابن دیزیل. اینجا مورسل نعل کرده، نمستر نه آوردیم. یکاش اینکه ام مورسل مستر نامیده. این قصه مال منجم رو ابن دیزیل چیز نعل کرده به صورت مرسل قال ازم علیان علی خروج از منال کوفت علی الحرویه که قصه مال نهروانه حروی نهروانه خوارد. زکان فی اصحاب هی اینجا اینجا اصحابی داره فقال له امین الله اگر شب بود لا تسرب بخونید در روز لا تسرب بخونید چون سرا یسری مال شب سار رو مال روز لا تسرب یها بهسر لا تسرب یها به و سر علی ثلاث ساعات معرفه این که این عین همونه بعد اون در شکر این حیوان چیه گفت بله بعد داره امیرمون فقط من صد که بالا فقط کل در قرآن اینجرم داره این خیلی شبیه به اون خیلی شبیه به متن نثر مذاهم به متن صدوقه خیلی شبیه به متن اینجا یه اضافه ای داره ابن دیزی کمن آمنه به کفی هازا لم آمن عليه، لم آمون عليه، لم آمون عليه، امی یکون که من تخذ من دون الله زیدن و ندا. اینم اشاره در اونجا داشت بعد اللهم، سومعاد بلع الناس، فعال ایوهالناس، ایجا کن و کالله من رنجیوم. این شبیه نجوا است توی بال اون کتاب نبود. الا ما یه اینم المنجم و کلکاهن و کاهن و کافر و الکافران و این باید به شمیه نجامل آقای هست من هست. در کتاب ابن دیزی این هم آمده در امالی صده اولای آمده بود او دقیق کردیم اون رو که ما مقارنه نکردیم. بعد اما والله این در هیچ مستر ما این پیمز و مستر که خونی نمیده این زیم اما والله لو ان بلغني انك تعمل النجوم لا اخلدنك في سجن ابدا ما بقي دیدین چی شد پلتائوس اعتراض کرد که اگر طنجیم بود چرا همیشه شلاق می‌داد تو این ذیل اومده سلنساوس این متن دی تو این متن دی سلنا اومده امام میفهمن اگر من بفهمم که تو متن این حرف زدی تو زندان ابد زندان ابدش بری لا اخلدنك في خو خموزد زندانه ابدی. دیروز من اول سه نفر بوسک کردم. سه زوجیه که وقت کافره. چرا مثلا کلاکیت اونها اشاللا به زندان زندانی شده کرده؟ لذا در این متن هست. لَو خلّدَنَ لَكَسَجْنَ ابدَنَ ما بقیتِ وَلَوَهَرَمَنَ لَكَلَ اثا بقول اندیشید کی چی ما هستند. این پولی در کی ماهانه مثلا به داده میشه، درست میشه؟ مکانی سلطان، سوم مساره. این زیلش هم نداره. اما انه ما كان للمحمد منجم ولا لنا من بعد پیغمبر اکرم از جنگ کردن با منجم نبود چون بعد ها خلفا و نمیذان سلاطین اینا از این کار میکردن دقت کردین پس این دقیقاً چه اختلاف مرجعی شد سید امطاس رحم الله اشکال میکنه که اگر این بود امام باید عقوبتش می‌کرد چرا امام عقوبتش نکرده این یک متن از کتب اهل سنت یه متن میگم چون بعض از مصون رو خود مرحوم صاحب بهار آورده من متون اینو که دارم میگم که الان ساحب... یک متن دارم میگم که صاحب بهار قدس الله نرسله آورده یه متن خیلی طولانی در کتاب تذکرت الخواص بله در کتاب تذکرت الخواص ابن جوزی آمده اون متن بسیار نسبتاً طولانیه اون در شرح نهضج البلاگ این بله. این کتابی از دوستان بسیار بزرگوار ما جلالی حافظ الله. به نام مصند نهجو بلاغه نمیشترد کتاب چست کتاب خواست گشت پدر پدرگم هست کتاب نمیشت کجا از این کتاب منچشون کاملا سقن و خیلی دقیق در نهجو در این کتابی که ایشون نقل کردن به نام مصند نهجو بلاغه در جلد دو صفحه دیست و بعد ایشون داره در کتاب ست ابن جوزی قال روا اکرمه عن ابن عباس اصلا اینا اصلا نیست پیش ما نیست منوش این کقدر لرها و شبیا نه ابی عراقه اینم پیشمانی است. اصلا کل این دوستان در کتوبه منایام نده. بله، لمن سر و امیر المؤمنین من الامبار، او من الكوفة، لكتال الخبرج به نهروان، کان ماهو مسافر ابن الاأوف ابن الاحمر. اگر این مطلب درست باشه، اون مندیف اسمش هم معلوم شه. مسافر ابن الاأوف ابن الاحمر. این راوی اخیر در متن امانی عبد الله ابن اوث احمد احتمالاً برادر علیه اینم خیلی عجیبه در متن امانی این برادرش اصلا خیلی عجیب نگم اصحاب اخیرش رو اصحاب مرجعش پس معنی شد که این تخریجی که برمون سید رزی کرده قال بعض اصحاب درست به ریشه داشته یعنی الان ما چند مغارد می‌کردیم اگه اون در این کتب کتاب احادث و آمده که تصور این متن ابن جوزی رو اصلا مروونده‌ها نقل نکرده لازمه ما مجبور از غیر ما بخونم این و عجیب اینه که مصدرش هم دو تا مصدر مستقلی که اصلا در مصادر ما نیامده اکرمان ابن عباس ابن ابن جوزی خبر بی حساب میاد تاجر احتمال عقل خیلی عجیبه نقل احادث سیخوارش خیلی عجیبه کان معهم مسافر ابن اوفی ابن و کان ینظر في ده که من بخواب نارو با کنم طولانیه همین مقدمات همین تا این که امام میگه بعد از به این محطم داره و سی روایت من صدقه منجمه و سمع رسول الله یه بود. این تو مطوب نبود تو اون محطم این کلام خود از سنبه موقوف بود اگه کلام مال صحابه باشه میگن موقوف اگر مال صحابه از رسول میگن مرفوع تو اون متن ما کلام خود امیر محطم بود خب دقیق در این مد و سمعه تا رسول الله یقول اختلاف مطور که باید برزی کرد پس معلوم شد که در کتاب معتبر محقق آمده ان رسول الله من صدق من ریشش این بوده نه اون روایت امانی در روایت امانی خیلی زرافت حدیثی است که با این مقابله ها من نمیخواستم خیلی این برشون یک ایک باب کلی رو باز میکنه سمعه تا رسول الله یقول من صدق من او کاهن سكن ما کذب کذب به ما انزل هم این در معتبر آمدن رسول الله توی روایت ما نبود ان علی یک بود چقدر اینها دقیق بودن ما الان مثلا اشتباهی صحبت کردم چون که مثلا ما موقعی معتبر اشتباه کرد کلام علی رو با رسول الله اشتباه گرفته در نسخه ما کلام علیه بود اما در این متنی که در کتاب تذکر الخواص آمده کلام رسول اللهه و این همون عبارت که معتبر علامه محقه اما این مسادر الان ده. یعنی این متن کتاب تسکت الخواست حتی در بهار هم نامده چه بسائه سمیعت رسول الله یقول و فیره اینجا فقط نسخه بدنه فیره این فقط این یا کذبه و فیره فقط کذبه و سمیعتوه یقول انما اخاف و علا امتی اثنه ایم. تصدیق به نجوم و تقدیر بالقدر که ما در اگه یادتون باشه گفت این روایت معتبری که در اونجا سند حسین و در حسین، که اند قیام سائب تصدیق به نجون تقدیر بالقدر نخونیم سابنه معموم شد که اون مطلب هم سند داره این مطلب هم درسته این دوتا در کلامه در این عبارت از امیمونه رسول الله قیب از اون روایتی که اونجا سند معتبری داشت سنه قاد ما کانل محمد منجمون منجم بعد همون صحبت هست. بعد فرمود یبنال احمر نکرزه و که و نخالفه و المنجم و کافر و کافرات نام این مطمئن داره یبنال احمر والله ان بلغنی انکه بعدها تنظروف نجوم و تعملوفی ها لأجلدن که حد دل جلد مفتری اونم نه اون ندار حتی اون مطمئن ثبوتی که من نهرکه ندار چون گفت اول اینجا میگه نه اول هشتار تازیه ها بگیزنم حد دقیقه سرطابوس کو که اگر این به حکم کافر خب با تازیانش میزد اینجا داره لعو جلدن نه که جلد المختری ولعو خلدن که ما بقید اول هشتاد تازیان بعد زندان اول این هشتاد تازیان هم باز تو این متن هست و اون مرد نرود خیلی چقدر زرافق مرد می هست دقیقه دلوقت... ولعو حرمن مکل عطا ما و کامی سلطان بله بعد ایشون یک نکته می داره در یک زیبی داره که خب اصفادیشم خیلی مناسر شعن همین رمویون نیست در زیرش داره ایوه هم ناس معلم و انهازه نجوب مسابی اصلا این تساره ها مثل چراغ چراه هم یعنی بی اثر بودن همون شعری گنوز خونده روشنان فرکی و اثری درما نیست این مشکل الان علمان ثابت نیست لقا بله جو الازدینتن و رجومن لشیاتین و یختد آبه ها زلمات این از اطلاقات و المنجمون از داد و رسول این ما اونتون مطور نداشتیم اصلا منجمین زد انبیا خط منجمین زنده خط انبیا و المنجمون از داد و رسول یک زبون یا یک زبون به ما جا کاشی سال و سالین حدیب به زوق سال و سالین خیلی بهتر بخون لا یرجعون الى قرآن و لا شرع این در هیچ مفت نبید این, هی این زید در یک یتصد، از نمما تصدترون به اسلام ظاهرن که دنبال مفیومن ظاهرت می مسلوم در واقع ایمان ندارن و از به باثن فمون الله و و ما یوم من هم بالاله الامه مشکون که از کافران گفت فروش و کی روايتن ايشون اين معروف هست راسته ميگه ايشون اب اما سردم نداره اين اب نحمر قله وعمر مي‌مونه لات هست از فياضي استا قله ولی من قال نال و نال کمر هم بعد گفته و هاها من احتمال اجبره راسته شوخی البته ما وقت بودنش بسته مي‌خواد مجبور مجوز مي‌رسيد ما چند تا ماست میگم در بهار هست یه دوست نکته سردر از بهار تکمیل می‌کنیم و وصله نیشاله.